بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در طرق خداشناسی بود اون راهی رو که ما مطرح کردیم عنوان طریقی برای خداشناسی بحث از استفاده از آیات الهیه بحث از آیات الهی رو بیان کردیم اولا برای همگان میسور نیست باید پنج ویژگی وجود داشته باشه یک این پنج ویژگی باید وجود داشته باشه تا انسان بتواند از این آیات برای رسیدن به خدا استفاده بکنه آیر هم گفتیم نشانه اما نشانه اینکه که به وضوح دلالت برزول آیو میکنه نه اینکه با هزار من سیریشون بخواد دلالت برزول آیو بکنه و واضحه یعنی وقتی اونی که با همین دیگه غیر ازیستن چیز دیگه نیست ولی همین آیاتی که به وضوح باید دلالت بر زل آیه بکنن برای همگان دلالت وجود نداره برای کسانی کن پنج خصوصیت رو دارن دلیلش این که اساسا رسیدن از آیه به زل آیه روشش رویش عقلیه و عقل را همگان دارن ولی همگان عاقل نیستن مشکل اینه عقل همگان دارن اما همگان عاقل نیستند برای اینکه عاقل بشویم لازم بود که ما یک عوامی در پویایی عقل ایجاد بکنیم که در جلسه گذشته بحثش گذشت و یک موانعی رو مرتفع بکنیم که حالا به مناسبت بحثو مطرح نکردیم چون روش روش عقلیه روش های عقلی هم معمولا سختن آسان نیستن رویش های عقلی اونهای که توش فکر وجود داشته باشه خیلی سخته گرایش به فرصفه خیلی کمه در بین افراد چون خ... با صد درصد عقل انسان کار داره ولی مثلا شاید به رشده های دیگه انقدر مثلا فرض و فهمید گرفتاری وجود نداشته باشه چون یه مفری وجود داره چند سبایی هست که آدم از عقلش نخواد استفاده میدم فرصفه نه همینه گرایش کمه بنابراین بحث استفاده از آیه به زل آیه عمومیت هم بدان چون باید عقل فعال بشه آنگاه هم که فعال شد محصولش کار ساده نیست ببینید چرا کار ساده نیست به خاطر اینکه شما میخواید از آیاتی به زل آیه برسید که اون آیات همه مادیه. و شما باید از یک موجود مادی به چیزی برسید که نه عین اوست نه مثل اوست نه شباهتی به او دارد. خب این خیلی کار سختیه که شما یه چیزی باید به یه چیزی برسید که این دوتا هیچ ارتباطی با هم ندارن بنابراین کار سختیه شما میخواهید از تعقل در شب و روز که زمان هستند به خالق شب و روز برسید که خداست که اصلا زمان بر نیست درش زمان وجود نداره پوری کار سختیه برای همیگان هم میسور نیست بنابراین به قول بعضی از متکلمین میگن ما باید به دنبال ساده روش برای رسیدن به خدا برسیم ساده دلیل برای رسیدن به خدا حالا اگر برای کسی هم میسور بشود چهار شکل داره بر اساس قوه درک انسان قوت و ضعف قوه درک انسان شما آیه رو میبینید باید به زل آیه برسید تمثیر کردید به آینه و تصویر ولی اینجا اینجا میگیم شما باید آفریده رو ببینید به آفریدهگار برسید از آفریده به آفریدگار رسیدن یعنی از دیدن آینه ها از دیدن آیه ها به ذوالعایر رسیدن از دیدن تصویر در آینه از دیدن تصویر در آینه ببینید رابطه اینطور طور هستش که که هستند که ابتدا آفریده رو میبینن یعنی آیه رو میبینن آنگاه به آفریدگار میرسن یعنی سه نقطه داره یه تعمل داره بعد میرسن به آفریدگار. اونا گروه اول هستن که در کف استعداد هستن پایین ترین حد استعداد روی ندارن که اول آفریده رو میبیند بعد مثلا میرسن به آفریدگار. دوم کسانی هستند که آفریده و آفریدگان رو با هم میبینن از ازش درک نمی کنن هر دو رو با هم میبینن یعنی در آیه رو میبینه ولی میگه ار عظمت الله چی خب کرده خدا تبهار الله هستن و خالده. و اصلا آفریده و آفریدگان رو با هم میبینه هیچ وجود نداره آدمهایی هستند هستن که از گروه دوم پویاتر عقلشون و شکوفانتر اونا کسانی هستند که ابتدا آفریدگار رو میبینن ولی بعد به آفریده میرسن از آفریده اول آفریدگار رو ببین بعد متوجه آفریده بشه خیلی کار سختیه من باید شما رو ببینم از شما به خدا برسم و بگم ای شما بودید ببخشید ولی اینا دارای یک قوتی از قوه عقلانی هستن لذا اون هشت موردی رو که بیان کردم در تعالی عقل لازمه و برطرف کردن موانع کسی بخواد از آیات استفاده بکنه و آخرین فقط آفریده رو میبینه فقط آفریدگار رو میبینه فقط اصلا به آفریده کاری نداره صاحب امشب و فردا فقط آفریده رو دید. آفریدگار رو دی و دیدی چه بلایی سرت اومد؟ ما را عید تو اللہ اگه به خدا داری نسبت بیدی که ما را عید تو اللہ من جز زیبایی ندیدم این آفریدگار دیدنه این کشته شدن رو نمیبینه این اسارت رو نمیبینه این دارای یک قوه عقلانی بالاست لذا در منقبت اون یعنی عیله عقیله یعنی ثبات عقل نه اینکه یک انسان باشد یک عقل داشته باشد بلکه اساسا ثبات عقل در او وجود داره عقل در اون ذاتی است نرزی لذا این تیپ از آدم که تدادشونم محدود و معدود در نظام خلقت وجود نازنی نهزت علیا خواهد داره زینب کبرا و سوامون با مالیها. اینا با دیدن آفریده ها اصلا آفریده رو لحاظ نمی‌کنن آفریده رو لحاظ می‌کنن این روش روش سختیه این باید عقل در انسان به ثبات برسه یعنی عقل نباشد عاقل نباشد بلکه عقیل باشد اینو ما توی بحث تفسیر گفتیم دیگه فرق بین رحمان و رحیم اینکه رحیم صفت مشبهه است صفت مشبهه صبات ماده است عقیله یه منی اون او تاش هم تایتانیس نیست اون تاش داری مبالغه است عقیله هم ثبات دارد هم زیاد دارد ولی عقل که نرماده نداری که عقل نرماده داره میگه یه چیزای اصلا نرماده نداره مثلا در زایمان میگن زن حامله است. بگه خوب مردم مثلا باردار میشه که میگن زن حامله است. اون تاش داید تنیس میشه. حامله دیگه، بارداره دیگه. یه تا داره ولی تاش تای تنیس تا نیست. این تای عقیده تای چیه؟ مبالغه است. یعنی هم صوابته در عقل و هم وفوره در عقل. که بخواد فقط آفریدگار رو ببینه. کار عمل نیست خب این بس. اگر به قرآن رجوع بکنی 22 آیه یعنی ما 22 آیه رو پیدا می نه 22 آیه 22 انوان برای آیات پیدا می که اینها آیات در نشانه ها هستن سنوری هم فل آفاق و انفسه آفاقش بیست دو, دو مورده بیست و دو, دو انوان داره که من انوانش رو بیان بکنم یه آیهش رو میخونم بقیهش رو آدرس میدم و نمیخوام دیگه ولی این... خب این بحث باید کامل ازش جدا بشیم میکنی بخوایم باش خداحافظی بکنیم اه... به نظر میرسید که رسیدن از خدا از طریق آینه ها و آیه ها مثلا آسان باشه که خب معیوستون کردم بیب نداره از این را نمیرسیم ای خود دنبارش نمیرسیم ای خود دنبارش نمیرسیم از ایران را بش... نمیرسیم چون اون بسترسازیش بود انجام بشه بخشی از آیات نشانه نشانه ها در آفرینش انسانه سوره مبارکه روم آیه بیست روم و من آیاتهی ان خلقکم من ترابن ثم از انتم بشر تنتشرون و از نشانه حضرت حق و از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید سپس انسانه هایی شدید و در روی زمین پخش شدید که در همه جا هستید خب این کجاش آیه است ببینید آدم علیه السلام از گل خلق شد همه ما تا روز قیامت هر چند میلیارد باشین از حضرت آدم هستین و حضرت هوا خب خدا این جنی رو که در این مادر و این پدر قرار داده چقدر ان درش وجود دارد که یکیش میشه سیاه یکیش میشه زرد یکیش میشه سفید یکیش میشه چشم آبی یکیش میشه چشم اصلی اینا با یکیش میشه بلند یکیش میشه کوتاه. این موعجزه الهیه یک جن است ثم از انتم بشر تنتشرون پخش شدید یکیتون تو قاره افریقا شده که تو قاره آسیا چه شدید اد تو جنوب شرقی آسیا شدید خود این جنوب شرقی آسیا یا همه از زن ما شبیه همن ولی خودشون به خودشون فرق قائلم هم بین کوریا و مثلا فرض کنید خیلی عالیه این ها توش فکر کرد من منطور رشته تخصصیم یعرفان نیست فقط خواستم آیات توجه بکنید در سوره مبارکه ای انسان آیه دو مؤمنون دوازده و سیزده سجده 6 تا 9 جاسی اینا آیات در آفرینش انسان نشانه های حضرت حق در تطورات جنین در صورت مبارکه مؤمنون آیات دوازده تا چهارده این قوغاز اینایه و لقد خلق نل انسان من سلالت من تین و ما انسان را از اصاری از گل خرک کردیم ثم جعلناه نطفتن فی قرارن مکین او رو در یک در واقع قرارگاه امن قرار دادیم بنام رحم. سم خلقن النطفه علقه بعد تطورش اون نطفه رو تبدیل به علقه کردیم فخلقن الالقه مزقه ما علقه رو تبدیل به مزقه کردیم فخلقن المزقه ازامن ما به این مزقه استخان دادیم فکسون العزام لحما استخان رو با گوشت پوشندیم سم من شعناه و آخر سپس یه خلقت جدیدی به افزودیم، حالا این کاری کاری و توارک و بیر بیر بیر که این احسان رو در اینجور خودش دست هم درده خودش کهیف بکنه میکید تباقو رو همینجوری بردن باش بودن آیه که به من برسی می آیه که من برسی خب برس. در سوره مبارکه قیامت آیات سی هفت و 39. سوره مبارکه یاسین هفتاد و هفت کهف سی و اینا قافش بقیه آیاتیست که در آده با جنین صحبت میکنه نشانه های عزت حق در عالم است در عالم حیات در موجودات کیفت اکفرون بللا چطور این کار می ای روتون میشه خدادر این کار کنه کیفیت تک فرم بهنا چجوری روتون میشه خدادر این کار بکنه و کنتم تو هم مرده بودید کم ما به شما حیات دادیم سمک کم این داره اشاره میکنه من از شما رو از نیست خرخ کردم بابا تو که نبودین من خلقت کردم چه اینقدر روز زیاده من هیچ خلقت کردم بعد به من دارم میگی این استخونه چجوری بخواد مشهور بشه خیلی رو داری کیفت <تصحیح> اکبرون بله بابا چجوری خودم چگونه به خودم کافر میشن و کندوم انوادن در حال شما مردگانی بودید فحیا کم سم یومیت و تورجعون بعد شما رو میران بعد به شما حیات بدید بعد اون حیات قیامتی است که بعدم در آخرت محشوب میشید. سور مبارکه بقره سا هشته. میگه توجه به این حیات بکنید. مرده بودید زندتون کردم بعد دوباره میمیرانم اتون بعد دوباره زندتون میکنم اینا رو بهش توجه بکنید میگه از خودتون اینا سور مبارکه عناعام 95 یونس 56 مومنون 80 توبه 116 دخان هشت بقره دیست و پنجا هشت قاف چل روم چهل نهل چست و پنج این شد چند تا ست نشانه نشانه های حضرت حق در روح. روح ویسارون ان روح و تو سآل میکنن از روح قوله روح من هم ربی روح از ناهی منه بهشون بگو چیزی که از ناهی من شد و ما من منر علمه لاغلیلا شما با این علم قلید به حقیقت او راه پیدا نمی کنید ما که علم شما کم دادیم دیگه با این علمه کردیم کم دنگه شاخشونه نکش سور مبارکه اسرا آیه اشتوپن سور مبارکه شمس هفت و هنشت سور مبارکه هجر 28 و هشت و بیستو نو مبارکه نشانه های حضرت حق در هدایت فطری و غریزی در انسان و حیوان که زنبور اصلا چه میکنه کنه مرچه ها چه کنه بخوایید مثال زیاد داره در سوره مبارکه تاهای پنجا قال ربونالذی اعتا كل شيء خلقه سمهده هر دگار ما کسی است که به هر موجودی آنچه لازمی آفرینش او بود داد و سپس رهبری کرد یعنی تکبین هدایتش کرد. زنبور اثر رو داره تکوینا هدایت میکنه مورچه رو داره تکوینا هدایت میکنه یعنی غریزتا داره هدایت میکنه رو فطرتان داره هدایت میکنه از هدایت های فطری و غریزی موجودات به خدا برسید شده نمیرسیم در سوره مبارکه بلد آیات 8 تا 10 سوره مبارکه شمس 8 سوره مبارکه روم 30 سوره مبارکه علق 4 و 5 سوره مبارکه الرحمان یک تا چهار. سوره مبارکه غاشی 21 نشانه های حضرت حق در خواب و بیداری در خواب و بیداره. و من هیچ هید بکن به و نهار و از آوردشان های او خواب شما در شب و روز هست خدا خوب پیش بینی کرده که انسان ها هم روز بخوابن شب و به تقاق من فزده این فیزالک لعایات مدتها بابا لقوم آیه هست پدیده خواب نشانه ای هست که تو رو به ظل آیه برساند اما لقوم جستجوگر یسمعون ای طالبون کسانی که دنبال یه حرف هستن سوره مبارکه فرغان چلاحف سوره مبارکه نوه نوه و ده سوره مبارکه انفال یازده شد چند تا؟ نشانه های حضرت حق در پهنه آسمان و زمین خب خداوند نمیخواهد در قرآن کریم جهان شناسی به ما یاد بده یعنی مثلا بگه آقا کهکشان الان این توهش فقط یه اشاره بکنه از این اشاره ما به ذل اشاره برسیم همین کافیه بغیاشو نمیخواهد از ما دنبالش نیست قران اون نمیخواد اصلا. بناش این نیستش که منجم باشه. یعنی قرآن رو از دیدگاه یک نجوم منجم مثلا فرض بخواد نازلش بکنه یا قرآن رو از دیدگاه جنین شناس نازلش بکنه. اصلا نمیخواد این کارو بکنه. یه سوزن میزنه، بیدار شدی شدی نشد، دیگه خب قطار رفت دیگه. وقتی رفت رفت سوره ممارکه آل امران صد و نوید، این نفی خلق السماوات و حاله از و اختلاف لید و انها لآیات در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز آمد و شده شب و روز، آمد و شده شب و روز، خب اینا لآیات حتما درش نشانه هایست ولی لآلل، برای صاحبان خیرات سوری ممارکه بغره آیه 164، روم 22، جاسیه 3، انکبوت 44، یونوس 3، انکبوت 61، قافر 57، زاریاد 47 و 48. نشانه های حضرت هق در آفرین خورشید و ستارگان و ماه. هو از جعل شمس زیاهن و القمر نورن او کسی که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد وقدر در منازله و برای آن منزلگاه های کرد لطال مععدد عدد سنین و ات ها بتون سالتون حساب کنیم چند ماه در کجای این به دست میاد در گردشش نسبت به زمین به دست میادیه خوینا رو برای تون کرده از قبلا، تو این اینجا ها خودش قرار داده ما خلق الله ذالکه الا بالحق فصل الى آیات لقوم یعلمون اینا آیات هستن یعنی نشانه ها هستن مدتا برای دانایان به تفصیل بنا شده بیان شده برای دانایان آلمان سود مرکه 5 پنج پونزده و شونزده ابراهیم سی و سی و سی و سی یاسین 38 تا هشتا چهل انبیا سی و معارج چهل مدثر سی و دو سی و پنج انعام نموده هفت نشانه های حضرت هر در آفرینش شب و روز هو الذي خلق الغلال الفنهار والشمس والقمر او ان شلون حقيقتكي است كه خلقت شب و روز را شب و روز مخلوق از ذات حق هستند آيه از ذات حق هستند چرا ما از شب و روز به راحتی میزنید به خدا نمیرسید میگه قرار این به من برسه خب چرا ما نمیرسید و شمس بلغمر. او خرقت خرشید و القمر او خلقت خورشید و ماه رو انبیاسی نور چهر و چهار یونس ه... شست و هفت فسلت سی و هفت اسرا دوازده نبع ده و یازده فرغان شست و دو نهل دوازده یونس شیش قصص هفتاد یک تا هفتاد سه لیل یک و دو حج شست و یک نشانه های در کوه‌ها، ما خرابش بکنیم برج بیزیدیم بله قرار از این رو به خدا برسین ببین این بشر چکارده میکنه الهی بمیرم براش بخواد بهش برین میگه افلا آ انظ رو کیف حالقطت ش تو رو تا به من برستین و از سما کیف رافت آسمان رو ببینید چیگووه گسترش کردم گسترش کردم و الل جوان کیف بعد بید کوه ها رو چ زمین نصب کردند اینا ببینید به من برید میرسید نهصد سال قغشی ه 19ده نوه شیش و هفت، رع سه، نهل پونزده، انبیاء سی و یک، فصلت ده، مرسلات بیست و هفت، نمل شست و یک، نهل هشتاد یک، فاطر بیست و هفت. نشانه حضرت حق در پیدایش ابر و باد، الله لذی یرسل الریاه فتوسیر و صحابن عبر و و باران اللهو لذی یرسل الریاه فتوسیر و ومن و من آیاتهی ان یرسل الریاه مبشرات و هم از آیات سوره مبارکه 48 ببخشید سوره مبارکه روم آیه 48 روم 46 اعراف 57 فاتر 9 بقره 164 واقع 68 تا 70 نمل 63 هجره 22 زمر 21 نبع 14 تا 16 فرقان 48 سجده 27 نشانه های حضرت حق در پیدایش رعد و برق آیاتی که در این زمینه هست و من آیاتهی یوری کمول برق خوفن و از آیات او این که برق و رعد را به شما نشان دهد که هم مایه ترس است و یونه من از سماع ما البته امتعا پیدا میکنه سور مبارکه روم نیست و چاپس پس رعد و برق هم آیه است که به خدا ما رو برسونه حالا ما رعد دوازده روم بیست و چهار رعد سیزده نشانه های حضرت حق در آفرینش دریا ها و کشتی ها خدا میگه از دریا به من برسی از کشتی که میبیند روی آب هست به من برسی خب ما از کجای کشتی باید به خدا برسیم لقومن یسمعون لقومن یوغنون اهل یقین اینا را استفاده می کنند آیاتون منطقه لعو آیاتون منطقه لعالمی برای اهل علم اونان که استفاده میکنن، بقیه کنارش رد میشن شند نداره از این طریق به خدا برسید باید بحث کلام و شرکت کرد آسان ترین روش برای شما مردم شده سختترین روش حالا من یکی دوتا راه میگم ببینید میشه بهش رسید یا نمیشه بهش سخر البحر او کانچنان کسی که تسخیر کرد دریا ها را لحما لحمن تری تا اینکه شما بتونید ازش برای شکم بتونین استفاده بکنید. یعنی این دریا رو در تسخیر شما قرار داده بابا یه جور دیگه هم میشه راجع به دریا فکر کرد فکر کردی خروشان باشه و نه از کنه اصلا و من آیاتهی میدونه چیه یک کلام این که خداوند خرس و شیر و گرگ و پرنگ و قوی تر از انسان خلق کرده ولی به اینا عقل نداده که اگر خدا به اینها عقل داده بود با هم اتحاد میکردن پدر انسان رو درمیابردن و من منآیاتهی اینکه عقل به اونها نداده به همین سادگی وقت به جایی که تو از خرس فرار کنی اون از تو فرار میکنه با اینکه یک دونه بزنه تو گوش ما سه کیلومتر میری اووت ولی بدبخت نمیشون رو جراعت نمی به طرف ما نستش هم دارون ملغر از عقل نداره خب این عقل خدا بهش نداده اینو بهش میگن تسخیر حیوان ها در مسخر انسان بودن خیلی خدا مهربونه سوره ممارکه نهر چهارده، فاتر دوازده، جاسیه دوازده، لغمان سی و یک، بغره و شست و چهار، ها شست و شیش، دریاها و کشتیها سخر البحر، و تر مواخر فیه، و کشتیها رو میگه سینه دریا را میشکافند. این آیات رو هم دقت بوش بکنید. های خدا در سایه آفرینش سایه ما رو باید به خدا برسونه. الم تر الى ربک كيف مد الزر آیا ندیدید چگونه پروردگارت سایه را گسترده؟ ولو شاء لجعلَهُ ساكنًا اگر میخواست او رو ساکن قرار میداد سمجعل نشمس علیه دلیلن بعد تا آخر سور مرکب فرغان 45-46 از سایه باید به خدا برسی نحل 81 نحل 48 رعد 15 نشانه های حضرت حق در آفرینش گیاه و میوه ها ام من خلق السماوات ول عرض و انزل لکم من السماع ما ان فان بطنا بهی حدائق از ذات بهجه ما کان لكم انتون به تو شجرها ا الهن مالله بل هم آیا بودهایی که معبود شما هستند بهترن یا کسی که آسمانها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبی فرو فرستاده که با آن باقاهایی زیبا و سرورنگیز رویاندین شما هرگز قدرت نداشتید درختان آن را برویانید آیا با این حال معبود دیگری با خداست؟ آنها گروهی هستند که از روی نادانی مخلوقات خدا را در ردیف خدا قرار می دهند. سور مبارکه شعرها 7 و 8 سور مبارکه نمل آیه 6 سور مبارکه لغمان آیه 10 و 11 سور مبارکه یاسین 33 تا 36 سور مبارکه انعام 99 ام. رعد 4 نهر 10 و 11 انعام 141 هجر 19 و 20 شد. چند تا نشانه؟ 15 یعنی این پونزده تیپ آیه رو شما کناره هم بذارید به خدا برسید نشانه های حضرت حق در آفرینش ارزاق عمومی یا هیها ناس اوزو کرون نعمت الله علیکم ای مردم یاد کنید نعمت های خدا را بر خودتون حل من خالق غیر الله معبودی جز الله هست که یعرزاق من مسمای ورعز که به شما روزی بده از آسمان و زمین از کسی میتونه این کارو بکنه غیر از او لا اله الا هو هیچ معبودی جز او نیست فعنا تعفکون چگونه به سوی باتلمون حرف میشی سوی مواقع فاطر روم چهل نم شست و چهار مالک بیست و یک روم سی و زاریات پنجا هود شیش سبع بیست و چهار قاف نه تا یازده ابس بیست و چهار تا سی نشانه های حضرت حق در آفرینش پرندگان قومینا رو باید هر کدومش یک دانشنامه کنارش بذاریم ما با تخصص من نیست با فقط رو میخونم بیان تفسیری آیه آیرم نمیخوام بگم یه ادنو بسم الله الرحمن الرحیم رحمه دردیم دفتیر بکنیم هنوز دوشیم یه بخوام اینا رو بگیم که دیگه عمر نوم میخوایم نشانه حضرت عق در آفرینش پرندگان عالم یر اولت مسخرات فی و سما آن نگاه نبیکنی اندیشه نبیکنی در این پرنده ها که خدا اونها رو در تسخیر شما قرار داده یعنی عقبه نداده یک دو چقدر خدا مهربونه اون چیزی که خیلی تو هوا پرواز بکنه پرنده ها هستن که بزرگتری این اقاب است و ارز که کرکس و اینا که تو بیاونن تو سعت شر نهایتا دیگه یه دونه فرض بفرمید کلاق مثلا پیدا بشونی هفت حالا اگه گاف بخواست پرواز کنه میخندی بدین آیه و این با اون پرواز میان رو پشت و خونه شما خونه بعد میشه پایین شکار کار کرده اینا هیش کدومشون نبتون دست به دست هم بدن به انسان حمله کنه حالا گرچه بعضی از فیلم ها کلونی ها که از دست خارج بشن حمله میکنه آدم از کفتر هم میترسه ولی این اتباه نمیافته. شما مسخره شما قرار داده اینا رو بازجره نمیرسیم ما کجای کارمون نقص داره ما که امامو یا حوزه درس کنیم یا دانشگاه درس کنیم میفهمیم که پچه نمیفهمیم سواد داریم فهم نداریم بین سواد و فهم چیه ها بین فهم و شعورم هم چیه هیچ کدوم اون فهم و اون شعور رو نه حوزه میاره و نه دانشگاه اون یه جا میاره ونی که ما مرخصیم تو اون دو تا هاست بباشید. بی معرفتیه. البی سعادینی عمه تو من املا سعادت بی بی معرفتیه. نهر 79 ملک 19 نور یک. نشانه های عزت حق در زنبور, در زنبور و در آفنیش زنبور هستن و اوه ربک الى الله ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یأرشون پروردگار تو به زنبور وحی فرستاد یعنی هدایت تکوینی کرد وحیش مراد این دیگه که از کوه ها و درختان و داربستها که مردم میسازن خانه درست بکنه یعنی اونجا زنبورشو عسلش تولید بکنه نره وسط دریا که تو دستت بهش نرسه جاهایی که دستت بهش برسه سوره مبارکه نحل 68 و 69 نشانه های آفرینش عزت حق در حیوانات صورت مبارکه شورا 29 و من آیاتهی خلق سماوات و الارز و ما بس سفیه ما من دابتن و هو علا جمعهم از و قدیر و از نشان های حزت حق خلق کردن آسمان و زمین است و ما بس سفیه ما و و ما بست صفیه ما من دابتن و هوه علا جمعه ازایشا و, و قدیر و آنچه از جنبندگان در آنها خلق و منتشر نموده و هرگاه بخواهد قادر بر جمع اونها می شود حیوانات قرار ما رو به خدا برسوند شورا 29 جاسیه 3 و 4 غاشیه 17 مؤمنون 21 تا 22 نهل 66 نهل هشتاد، فاطر بیست و هشت، یاسین هفتاد، یک هفتاد سه، زخرف دوازده و سیزده، قافر هفتاد و چندشو هشتونیه. چند تا شو؟ نونزده، آفرینش اعضای انسان نجانه های خداست. باید ما به خدا برسیم، زول آیه است. و کم من بطون امهاتکم لا تعالمون شیعن. و لكم السمع مسام و لا ابصار و, و خداوند شما را عشک مادرات و خارج کرد در حالی که ایت شنیدن می‌رسد کیلومتر. ولی جعل علیکم السمع ولی براتون گوش قرار داد ولی ابصار و چیش و, و, چشم و چشم ها قرار داد مبادی علم شما گوش است آن چون اولین مرحله علم شما علم هستی. و مهمترین علم حسی که به دست میاد از ابزار از مهمترین ابزاری که به دست میاد از ابزار است و گوش است و الا مثلا فرض کنید ملموسات بشر خیلی به دانش بشر اضافه نکرده یا مثلا فرض بکنید که بویایی ها خیلی به دانش بشر اضافه نکرده اون چیزی که به دانش بشر اضافه میکنه چشپست و سور مورد که نه 78 مؤمنون 78 یونس 31 بلد 8 و 9 اناام 46 فصلت 5 نشانه های حضرت حق در زندگی اجتماعی انسان و من آیادهی انخلق لکم من انفسکم از واجن و از نشانه های حضرت حق این است که خلقت برای شما از جنس خودتون زوجه هایی رو لتس کنو علیه ها تا با او به سکینه برسید بابا این زن و شوهر باید از همدیگه به خدا برسند نه به دادگاه و طلاق. نه به دعوا و معرکه گیری خب ببین بین اونچه که ما تشکیل بیدیم با اونچه که خدا گفته چقدر فاصله است ببین آیاتی از نشانه های علنگ نکن مدتن و رارحم ان فیزلت که باز لعااط در این همه موارداخب کدوم زندگی که به خدا برسه حالا میگه اون زندگی ها که توش نماز باشه روزه باشه اون خرابه زندگی که توش دین باشه دین آن چی می نمیشود؟ آ آرزوز نماز که تو نماز خود تو دلت بخواد روزیکی تو دلت به هاتین دار این نامتو کجا؟ چون بابا از آدم رو به خدا برسمه. آخه میگه فی بیوبت ازن الله لكم ان ترفا ان یورفا اسمه. فی بی فی بیوبت ازن الله. ای خونه ها ای که خدا اجازه بده نامش برده بشه. خونه فاطمه زهره و حضرت زینب در ای خانه است اینا ما رو به خدا می رسند که خونه آفی بایوتن ازن الله است کدون خونه است؟ شاخصه ها چه بگی سوره مبارکه روم آیه 21 اعراف 89 انسان آیه 2 حجرات آیه 13 انفال 62 63 و آخرین آب با کمی دور صاف بگذارد آب اینو وقت برای شما به خدا برسونید این قرار من و شما رو به خدا برسم سور موارکه انبیا سی اولا یرال لذین که فروان سماوات ول ارز کانتا رتغن هما و جعالنا من الماء کل شیء حی از آب همین چی داره آقا بله ولی خود آب موجود هیه یا نه چی و چرا فراسفه میگن معتش شیف آدو شیف نواد باشن حیات میده ولی خودش حیات نداره تا الان فکر دوش نکرده بودی عالیه این اگه حمله بر چیزی نشه وحیه از چیزی که موجود خودش حیات نداره ولی حیات سور مبارکه نهل 65، سور مبارکه فسلت 47، سور مبارکه هج 64، سور مبارکه نمل 60، سور مبارکه ابراهیم 32، سور مبارکه عباس 26 و 27، سور مبارکه واقع 69 افتاد، سور مبارکه روم 30، سوره مبارکه فرغان 48 و سوره مبارکه انفال آیه 11 این 22 انوان و سرفصل بود که نشانه های حضرت حق در آفرینش هاست ما باید از اینها به خدا برسیم بسم الله بسم الله دیگه موید کار سخت دیگه. کار سختیه این راحتی شد خب وقت دارم تو ده در وقت گفتم باید بگم وقت دارم خب یکی از راه رسیدن به خدا این بود که خدا و کلی کار سختیه تصدیق به سخته زخته اما یکی از راه رسیدن به خدا خودشناسی است من عرفه رفسه فقط عرفه شما براز از خودت به خدا برسی چی چیه خودتو بشناسی شناسی میخوای پیدا بکنی به خدا برسی این بسه خیلی عالیه باز همچه جنبه کلامیش کمتر باشه ولی به هر صورت ما دنبال بهانه میگردیم حرف خدا رو بزنیم ولی میفهمم که این حرف اصلا ممکنه که بیشتر جنبه حدیث داشته باشه ولی عرفان و معرفت شما نسبت به خدا زیاد من همه حرفم همینه ما آمدیم که دست دست خدا خب یه رایش هم میده در سوره مبارک جاسی آیه چهار و فی خلقکم و ما یبوس من دابه آیات للقوم الذوقن در آفرینش شما و جنبندگان که پراکنده از نشانه‌های برای اهل یقین است نشانه است یعنی اهل یقین از انسان به خدا میرسند از خودشناسی به خداشناسی میرسند این میگه یعنی راه خوبیه سوره مبارکه زاریات آیات بیست و بیست و یک وفیل ارزه آیاتون و وفی انفسکون در زمین نشانه هایی برای رسیدن به خداست برای اهل یقین و در نفس و در جان شما آیات انفس شما هستید افراتو بسرون نمی بینید در سوره مبارکه فصلت آیه 53 هم آیاتنا فیل آفان و فی انفسهم حتی یتبین لهم ان انهال حق به زودی نشانهای خود را در کرانهای هستی و در خودتان حالا من میگم خودتان ولی آقاییم که انفسهم خودشان یعنی انسان ها و آنان نشان خواهم داد تا برایشان روشن شود که او حق هست پس ما از خودمون هم باید به خدا برسیم یعنی یه خودشناسی این روایت که زیاد چندید حالا از غذا او روایتی که زیاد شنیدید شاید حالا بهش برسیم چی میگه این روایت ها. این آیاتی که شما یکی از طرق رسیدنه به خدا شناخت شناخته چیه خودتونه خب ما که از بقیهش که نتونستیم اقلا بذار خود رو ببینیم میرسیم یک دو بعد از ها این سوال رو جواب بدیم اگه بناس ما به خدا برسیم چی رو باید در خودم بشناسیم. این رو جواب بدیم این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه یکی از است که همه جاخونده بیشود ولی کمتر بهش برداخته میشود چون سخت دره 92 معنا براش کرده نود و دو است حدیثیست امت قرص و محکم از عصه دلالت ولی شما یکیشم هنوز نشد نیدید با این که احل مجالس هستید نگران نباشید من هیچ کدوم از اون 92 تا رو اصلا اشارم بهش نمی کنم ولی یعنی فکر نکنید که اوه دیگه تا سه جلسی دیگه بخواد 92 تا رو میگه. نه 92 تا نمیگم ولی یکیشون میگم نگم یکی که خارج از اون 92 تاست و به یک متن عالی دعا میپردازم خیلی خوشگله این خیلی عالی حالا میگم کجا بهش میپردازم وقتی به روایات خودشناسی میرسیم پنجتون مطلب رو باید درش لحاظ بکنیم یک خودشناسی فی نفسه عمریست خود خواهی نبا خود شناسی خود شناسی فی نفسه امری است عرض ارزشی یه کار ارزشی بخواد انجام بدید به خود شناسی برسید معمولا ما ها وقتی به اون میگن که کار ارزشی رو بگو میگیم انفاق یکی از کارهای ارزشی انفاقه ولی یکی از کارهای ارزشی چیه خودشناسی خود تو کی هستی چی کار آلانی کجای آلانی افزل المعرفه معرفت الانسان نفسه بر شناخت خودشناسیست فی نفسه عرضش بالاترین شناخته المعرفت بالنفس به نفس ارن فعلمعرفتین سودمندرین دو شناخت خودشناسیست یک شناخت معرفت الله یک شناختم هم چیه بله معرفت النفسه میگه بین معرفت و نفس و معرفت و معرفت و نفس انفعه چرا؟ چون معرفت و نفس شما رو به معرفت و میرسونه و برعکسش نیست شما انجا به اونجور میرسید بنابراین این نافع این یادش میگید حتمان یادش میگید حتمان زل حکمه معرفت انسان نفسه. بالاترین حکمتهای الهی است نسک... که انسان خودشو بشناسه همه این فرماشات مول حضرت همشم در قرار و الحکمه غایت المعرفه یعرف المرعونف سه نهایت شناخت اینه که انسان به خودشناسی برسه معرفت النفس انفع المعارف و امام باغر علیه سلام حضرت عمیر که بفهمت معرفت النفس انفع المعارف سودمند ترین شناخت ها شناخت شناسی خودشناسی است پس ارزشیه، فی نفسه هم رو و حضرت امام باقر بخواه لا معرفت که معرفته که به هیچ شناختی به اندازه شناخت تو نسبت به خودت ارزش نداره هیچ شناختی خودت خودتو بشناس میخوام بگیم که اگر بخواهم خودمون بشناسیم با چی رو از خودمون بشناسیم چی رو در خودمون باید به ظهور برسانیم این یک، دو دومین نکته ای که باید در رابطه با عادیس معرفت و نفس بدانیم این است که آ اگر کسی به معرفت و نفس نرسد زیان کرده جهل به خود نه معرفت به خود جهل به خود همراه بازیانه یک من جهل نفسه کانه به غیر نفسهی اجهل اون کسی خودشو نشناسه غیر خودش در غیر خودش نادانتره اون کسی که خودش را نشناست در غیر خودش شیعه ها نادانتر اگر دانایی در غیر بخواهد حاصل بشود باید من از خودت شروع کنی. باید من خودش شروع بکنی باید اول خودشون رو تو چی کاری باز هم از هستن میره کیفه یعرف غیر احمن یجهل نفسه چگونه اون کسی که خودش رو نشناخته میخواد غیرش رو غ شناسی امکان نداره برای کسی که به خود شناسی نرسیده لا تجهل نفس فان جاهل معرفت نفسه جاهل بكل شیء از خودت بیخبر نباش که بیخبری از خودت بیخبری از همه چیزه. بازم از آقا امیر المؤمن من لم یعرف نفسه عن با سبی... سبیل نجات. بابا کسی که خودشناسی نداشته به راه نج... از راه نجات دوره و خبت في و والجهالات و در گمراهی و نادانی قرتیده خبر نداره سومین ویژگی که در واقع اهادیث معرفت شناسی... نفس شناسی دارد اینه کلید هستی شناسی شما جهان و خلقت رو بخوای بشتاسید باید اول خود رو بشتاسید حضرت امیر من عرف نفسه فهو ول غیرهی عرف اون که خودشو رو دیگران رو بهتر میشناسه. باز از آقا من عرف نفسه فقدنتا فقدنتها الاغاگت کل معرفت و علمن و کسی که به خودشناسی برسه در هر شناختی به انتها رسید در شناخت در هر چیزی به انتها رسیده هستی شناسی راهش یا اگر بخوای به قیب راه پیدا بکنی راهش که خودت که در واقع آشکار هستی و در نهان هستی خودتو چیکار بکنی؟ در آشکار هستی و در پیدا هستی چکار بکنی اول خودتو؟ بشترسی در یا امنو بلقیب حساب بشین تو که در عالم شهود و شاهد هستی باید خودتو اول بشناسی، تا به عالم غیب برسی و چهارمین ویژگی که برای این تیپ از, از بحضورتون روایات بیان میکنن میگن کلید خداشناسی است اصلا راه شناسی. قی... قال یا رسول الله یک سالی از پیغمبر کردن ده تا مرتبه داره من یه مرتبهشو میگم کیف طریق الی معرفت رب و عرفت الحق راه رسیدن به حق چیست شناخت حق چیست فرمود معرفت و نفس خود تو بشناس خود تو بشناس اونو بشناس این یک روایت. اعرفكم به نفسه اعرف و کسی که بیشتر خودش رو بشناسه بیشتر خودانو بشناسه باز یه روید دیگه من عجز ان معرفت نفسه فهو و ان معرفت خالقهی هی عجز کسی که از شناخت خودش آجز باشه از شناخت خدا تره حالا همه حرف اینه که این که من خودم را بشناسم با چی کار بکنم با به چه چی چیزی دسترسی پیدا بکنم تا به خدا برسم یعنی از خودم چی رو بشناسم تا با خدا برسم از کردم نود و دو معنا برای این حدیث ذکر کردم. خیلی عجیبه یعنی این حدیث رو از دوت و دو دیدگاه بهش نگاه کردم. ولی آلی ترینش هم نیست خودم براتون میگم. این که این در واقع روایت من عرف نفسه فقط عرف رب به حدیث باشد این سند متصل به امام نداره این روایت ها ولی این تیپ از روایات زیاده عرف بکن به نفسه عرف بکن به رب که خوندم این تیپ من دسته تشو خوندم بیشتر از اینا هست اما این روایت سند متصل نداره به امام ظاهرا جاهز در اون کتاب مطروب و کل طالب این کلام امیر این رو یکی از کلماتی قرار داده که در واقع به حضرت نسبت داده جزید صد کلمی است که به حضرت نسبت داده شده مرقای مرسله اما متبره چون مزامین دیگر چه میکنن بکنن این روایت رو چه خار بکنن تعیید بکنن خب خدا رو بشناسید چه خب خود رو بشناس خب خود رو بخار بشناسید به چی بشناسی آقا عالی ترین چیزی که شما را به خودشناسی میرساند دعای شریف عرف است. اس عرفه رو بخون خودت میشی خدا رو میشناسی. عرفه رو بخون. حالا بسم من بخشی از این فقرات دعای شریف عرفه رو بخونم. آقا ابی عبدالله الحسین شکرده است شکرده است. این نویز برای هفته بعد ولی اینجا شو بخونه دو تا حقیقت رو بیان میکنه سید و در دعای عرفه اول خدا رو معرفی بیکنه بعد خودشو. یعنی انزا نیت به این که فلکل هم حمد هم دا دائم که مولتوه ولکه شور واسبان ابدا و سپاسگزاری در واقع جاوید و همیشه گیمولا توست سمعنه یا الهی. المعترف بزنو بی فقیره حالی. بعد من اعتراف بکنم من گناهکارم. و من گناهکارم. من من اصلا علی گناهکارم. پس تو منو ببرش. انا الذي اساعت و آنال ذی اختاعت و هممت ذی حمام جهلت آنال ذی جهل سهوت انا الذي تممت انا الذي تعمدت انا الذي وعدت انا الذي اخلفته انا الذي نحست انا الذي قررت انا الذي اعترفت بنعمتك علي عندي و ابوء بزنوبي خدایا من اینا رو بد بفهمم من اینا من اینا هستم ابو تو کی هستی ابو تو کی هستی یا مولا و این آمدن آمکه من انا و کرامت من اهک لاه سیها با اصلا نیمتهای تو و کرامت تو قابلشون آریش نیست یا بهبود نیست ان دلزی مندن ان دلزی ان عمدان دلزی احسن دان دلزی اجمال دلزی آفازل دلزی اجمال دلزی رضاقتان دلزی وفق انند الذي عطيتان د الذي غنان الذي ابيتتان د الذي اوتان د الذي كفيتند الذي هداتا انند الذيسمتان د الذي سطارطان د الذي غفرتان د الذي اغل ده الذي مكند د الذي از ازازتا انند الذي اند الذي أزتا، آن دلزی یادت، آن دلزی نصرت، آن دلزی شفیت، آن دلزی عفیت، آن دلزی آگرانت، تبارکت، تابیرت، تو اینی خطو تو همه در پایی نهزیزی و او همه در آوج، اینو می‌بیش بعد از این شناد است که وجود نازنین حسن زین العابدین علیه السلام در دعای شریف ابو حمزه سمالی میده قوغا کرده آقا در ابو حمزه سمالی ابو حمزه رو خوندی برای ثوابش ولی هیچوقت نخوندی که به خدا برسی آقا میفهمه سیدی آقای من مولای من انا سغیر و لذی من اون تفلی بودم که تو منو پرورش دادی انا جاهل و لذی من نادانی بودم که تو منو عالمم کردی انا زال و لذی تا گمراه بودم تو هدایت کردی انا وزی و رفعت پست بودم تو منو آوردی بالا چقدر خوشگل بیان بود. انا الخائف الذي آمن من ترسان بودم تو منو به امنیت رسوندی انا الجائل الذي اشبعته ولا العطشان الذي ارويته ولا العاري گشته بودم سیرم کردی تشته بودم سیرابم کردی برهنه بودم پوشاندی والفقير الذي اغنيته من نیازمندی بودم که تو منو بینیاز کردی و الزعيف الذي قويت و الذليل الذي اعززته از و السقيم الذي شفیته من ضعیف بودم خار بودم مریض بودم تو منو قوی کردی تو منو عزیز کردی تو منو از اون حالت ذلت به عزت آوردی و السقيم الذي شفيت بیمار بودم شفاام دادی دکترا نه تو چون این دکتر آقا هر پنجات تا ست تا زمین اما تو هستی که اراده میکنی و سائل الازی ته، و المزن و سترت گناه کاری که تو پوشوندی اصلا نبیذاری مردم به فهم و کیه و سائل اون محتاجی که تو عنایت میکنی و خاطر لازی اقل اقلتهو خطاکاری هستم که در گذشتی اگه تو به این بار نپذیدی توبه ما رو نپذیری چیکار با حال میکنیم توبه ما رو و انا الغلیل اللذی که سرت اندکی بودم که بسیارم کردی و المستزعف و لذی نسرت که یاری کردی انا ترید و لذی یویت رانده شده ای که پناه دادی و انا یارب اللذی لم استحفی که فی الخلا منی پروردگار اون کسی هستم که در خلوت است و شرم نکردم، ولم اراقب و کف در جمعم مراقب تو نبودم انا صاحب و دواهل ازما. من صاحب مصیبتها ها و بدبختی بزرگم انا الازی علا سیده هیچ ترا من بر آهان خودم گستاقی کردم انا الازی عصیت جبار از السما من سلطان بزرگ آسمان رو نافرمانی کردم انا الازی اعتید تو علا جلیل منم که رشوه دادم تا معصیتهای جلیل را مرتکب شدم انال لذیهین بشر تو به ها خرجت و منم که وقتی به انجام گناهان بشارتم دادن انال ها با شتاب با سوشم اومدن گفتن اینجا من لذیه گناه دویدم. من این آدم هستم این رو بدونم این رو بدونم انا الذي <سؤال> امهلتني فما عرف منم که مهلتم دادی به خودم نایمدم و سطر تعالی فما استهیئت عابر و حفظ کردی ولی هیا کردم خجالت نکشیدم و عملت بالمسمعوسی فتعدیت و گناهان رو مرتکب شدم و زیاد رویم کردم استاق وس و از قطعنا منعای نکف و ما بانه تو خودم رو از چشم ده انداختم. ولی اهمیت ندادم. خودم از چش به تو انداختم. خیلی بده. فقط حسای تو که و خالف تو که به جهدی با تمام قواد رو هم نافرمانی میکنم. من اینا، این رو با اگه آدمی زاد این معنا رو بشناسه در خودش یک حالت خوفی درش ایجاد میشه این حالت خوف انسان رو باید به یک ملجع و پناهگاهی برساند و وقت اون ملجع و پناهگاه چیست؟ ففر رو الله یعنی میرسوند به سوی خدا بنابراین خودشناسی هم من اندکی راجبی صحبت کردم اما انصافاً این هم کار من و شما این کار سختیه تا ببینیم که آخرین راهی که برای رسیدن به خدا به ما در واقع میتواند کمک بکنه چیه؟ یکی دو راه دیگه هم مونده حالا ببینیم یکی دو راه چگونه میشه بهش بپردازی الحب داره خدا نیاخد. سلامت بشین. خدا